بسم الله الرحمن الرحيم فبشع العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بندغان عزيز وقران قاتر عزیز برنامه درس های عقیده از قرآن و صنعت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نهمین برنامه از برنامه های عقیده در قرآن و صنعت قرار داریم دوستان عزیز در این برنامه در مورد توحید ربوبیت یا توحید افعال الله جل جله خدمتان صحبت میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم اول سرازی گفت میزنیم که ربوبیت از چی گرفته شده؟ ببین ربوبیت از, از رب گرفته شده از رب گرفته شده که به معنای مالک مصلح تربیه کننده و کسی که از او اطاعت میشه پس الله جل جل رب ما هست و مسلمان ها به الله جل جلاله به رب العالمین ایمان داره و در قرآن آمده که الحمدلله رب العالمین و شما اگر یک چیز دقیق متوجه شده باشین که هر پیغمبری که دعا کرده در قرآن گفته که ربنا پروردگار ما رب غفرلی لی پروردگارا مرا ببخش ربنا الله بر ما دعا را یاد داده گفته که بگوین که ربنا آتنا فی دنیا حسن بگوین که ربنا ای پروردگار ما بر ما بتی در دنیا ها هارم و در آخرت هم نگی هارم پس اما یک چیز متوجه باشه متاسفانه متعصفانه امین 99 نامی که در های قرآن شریف نوشته شدن سرازی همه یک تحقیق دارم که انشالله اگر الله جل جل هو عمر داد و توفیق داد هم بحث میکنیم بعضی نامها های اضافی داخل شدن و بعضی از نامهایی که در قرآن و سنت نامده دیگر می جدول آمده و ل آمده نام و بعضی نامهایی که در قرآن بسیار ذکر شده مثل نام رب دیگر می نام شما خوب سعی کنین آیا رب ذکر شده دیگر می نویسدونو نام نیست پس بیایید جک اشتباه هست که انشالله اگر الله جل جل یاری کرد و درس در باری اسمهای الحسنا گرفتیم اسم الله الحسنا حتمان سر زی مسلاح بحث بسیار دقیق خواد کردیم به هر صورت پس کلمه رب به معنای پروردگار است به معنای مصلح است به معنای مالک است مالک ما کی هست؟ الله جل جلو مصلح یعنی اصلاح کنندی ما کی است؟ الله جل جلو است. استربیه کنندی ما کی هست؟ پروردگار ما کی هست؟ الله جل جلو است. و کسی که از او اطاعت میشه که الله و جل جل. پس ما کلمه رب به هیچ کسی دیگه استعمال کرده نمیتونیم یک مشکل خطرناک که ایره مشرکین زیاد استعمال میکنن و مشرکین ای کار میکردن بر خود ارباب گرفتن ارباب الانواع میگفتن اتخذو احبارهم هم و رهبانهم هم ارباب من دون الله راحبا و صوفیای های خدایان خدای های ساختن متاسفانه در دا زبان داری یک اشتباهی بسیار خطرناک است احیانا برای ملکا و بر خانا ارباب استعمال میکنن ارباب جمع رب است و این کلمه کفر است چطور بری یک مخلوق تو رب یا او را ارباب میگی؟ چرا که این کلمات در زبان دریم ما شما از قبل از اسلام در زمان که مردم کافر بودن بعضی کلمات تا با حال هم ماندن که متاسفانه مردم او را استعمال میکنن و سرش فکر نمیکنن او مانده باشی ارباب در بعضی چیزها میگن چی مانه ارباب؟ ارباب جمع رب یعنی خدایان یک انسانه و خاطر این که در زمانهای قدیم اگر فکرتان باشه مردم پاچار، امپراتور، خانه، کلان قریر پرستش میکردن به عوضه الله ازی خاطر ای از اونجا مانده و مردم مطاعجه نیستن الله بر ما توفیق بده از این کلمات کفری، از استعمال از این دوری بکنیم بسیاری کسا استعمال بکنه، به چرا نمیفامه در ایران هم رواج است، در افغانستان هم رواج است در زبان فارسی ها داریم، مردم بگن، ارباب، ارباب، من ست مرتبه شنیدیم از این خاطری که بسیار حرام اونها رواح است خب پس ربوبیت در استیلاح چی را میگن؟ ربوبیت در استیلاح یعنی افعال الله جل جلوه ایمان داشتن یگانگی الله جل جلوه در افعالش خب فکر کنین ایمان داشتن یگانگی الله جل جلوه در افعالش سرازی فکر بکنه که ایمان داشتن به یگانگی الله جل جلوهو در افعالش ای چی مانا انسان از تعریف سهار دقیق میفهمه که الله جل جلوهو افعال داره که دو افعال الله یگانه هست و مخلوق دو افعال شریک شده نمیتن او افعال مخصوص الله جل وقت که او افعال مخلوق الله جل جلاله است آیا ما او را می تونیم بمخلوق نسبت بتیم الله جل جلاله افعالی داره که او افعال ملائکه هم نداره، پیغمبر هم نداره، اولیاء الله هم ندارن. هیچ مخلوق دیگه نه انسان ها نه جنیت، هیچ هیچکس او افعاله نداره. چرا؟ بخاطر از که توحید ربوبیت چی رو تقاضر میکنه که ما ایمان داشته باشیم به با افعال الله جل جل به مو شکلی که الله جل, جل و افعال به خود نسبت داده ان التوحید همی است که او افعالی که مخصوص الله جل جل است او را به خودش نسبت بتی و او افعال برای انسان یا مخلوقی نسبت ندی خب متوجه استیم افعال الله جل جل مخصوص الله است توحید ربوبیت چی مانا؟ معنی توحید ربوبیت است که او افعال را که الله جل جلاله بر خود نسبت داده او را به الله جل جلو نسبت بتی و او را به مخلوق نسبت ندی کدام افعال است که الله جل جلاله بر خود نسبت داده کدام افعال است که مخصوص الله است و او را مخلوق نمیتونه داشته باشه از کجا این رو بفهمیم آیه میتونیم که از کتاب‌های دیگه بفهمیم نه از کتاب توحید می کتاب توحید کدام کتاب است؟ قرآن ازی مشان است و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است شما سل کنین الله جل جلو ده قرآن ازی مشان که الله خالق کل شی الله خالق کل شی خلق کننده کی هست؟ الله جل جلو هست الله خالق کل شی پس خلق کردن یکی از افعال الله جله جلو است یحیی و یمید الله هست که او زنده می پس اگر ما بگوییم که یک مخلوق می تانه ای داشته باشه پس شرک میشه در افعال الله جل جلو این افعال مخصوص الله جل جلو است پس ما ببینیم دو قسم افعال باید بشناسیم یکی افعال خالق بشناسیم و یکی افعال مخلوق بشناسیم. چی فرق از بین افعال خالق و افعال مخلوق؟ افعال خالق با عزت و عظمت و بزرگی الله جل جلاله شایسته هست پس افعال الله جل جلاله که شایسته ذات او هست، افعالی است که مخصوص الله جل جلاله او افعال مخلوق نداره چرا؟ به خاطر که مخلوق عاجز است ناتوان است نمیتونه که افعالی را که خالق داره او این مخلوق داشته باشه خلق کردن الله و خالق و کل شی روزی دادن به الله جل جل و ما من دبتم هیچ جنب منده نیست فی الارد در زمین الا علی الله رزقهم اجل بالای الله جل جله رزق از هز. هست بس روزی دهندگی است الله جل جله است تدبیر کننده امور جهان کیر تنظیم میکنه تدبیر میکنه شبکه جور میکنه روزی کی جور میکنه کابل کی, کی حفظ میکنه کی دنیا را ترتیب و تنظیم کرده و کیر تدبیر میکنه الله جل جلاله يدبر الامر من السماء الى الارض يدبر تدبير میکنه امور از آسمان تا زمین پس تدبیر کننده و حفظ کننده ای جهان کی است الله است جری افعل است که به عظمت خالق شایسته هست کی زنده میکنه و کی میمیرانه هو یوحی و و والیه ترجعون بین هر کدام از ای آیات قرآن است. خب. اناله اگر کس اینمی افعالی که مخصوص خالق است ایر به مخلوق نسبت بده، شرک در چی پیدا میشه؟ در افعال الله جل جلاله پیدا میشه. پس ما به خاطر از که یکتا پرست هستیم میگیم ما پیدا کرده؟ الله جل جلاله. زمین و آسمان کی پیدا کرده؟ الله جل جلاله. جل مادر و پدر ما کی پیدا کرده؟ الله جل جلاله. پیغمبره کی پیدا کرده؟ الله جل جل. اولادی پیغمبره نواسای پیغمبره کی خلق کرده؟ کی پیدا کرده؟ الله جل جل. جهانه آفتاب و محتاب ستاره ها را کی پیدا کرده؟ الله جل جل. پس وقت که خالق همه الله جل جل است این صفت است که از عزت و عظمت الله جل جل شایسته است. روزی دهنده کی الله جل جلهم مره کی روزی میته الله جل جلهم ماهیره در بحر کی روزی میته الله جل جلهم یک که خورده در دا داخل یک سنگ کی بره روزی میرسانه الله جل جلهم جل. ای پرندههار ای خزندههار ای تمام مخلوقات کی روزی میته الله جل جلهم جل. پس شما ببینن که رزاق ما روزی دهنده ما الله جله جلاله است چرا به خاطر که روزی دادن به عظمت و بزرگی از تعلق میگیرم روزی مرا رو کی تعیین کرده ما باید تا سالگی چقدر گوشت بخورم به سه خودم نیست احیانا می گوشت بخورم دکتر من میگفتم بگ بخوری میموری خورده نمیتونم سری کسا پیسه دارن لكن 50 ساله شد استحقاق گوشتش خلاص شده مرجاکر میگه تو دیگه بازی پرهیز هستی دیگه خورده نمیتونی یک کس سی برنجش که الله برش روزیش همقدر تعیین کرده خلاص شده دیگه برنج خورده نمیتونه که بخوره زوف میکنه پس روزی ده هندی ما الله جل جلو هست تدبیر زمین و آسمان کی میکنه یا آسمان کی حفظ میکنه این افتاب چند قرن تیر شده از افتاب شما استاین زانه پرسان کنید که عمر هفته چقدر تخمین میکنه؟ و هم تخمین میکنه شاید جهن قرن باشه ای چطوری حرارت خود از دست ندار دوابه است این هست ایره ترتیب تنظیم کرده الله جل جل این زمین و ای کوها و این محتاب و ای سیارات و نظام شمسی کل از آره؟ الله جل جل هم. پس به ایسا یک چیزی که برای ما میرسه که الله پس میفهمیم که الله جل جل هم. تا هر چی دیگه میو یودات بیرول من الار زمین پس ما باید ای افعالی که مخصوص الله جل جلاله است ای به یک مخلوق نسبت نتیم کی زنده میکنه الله جل جلاله کی میمیرانه زندگی ما با ای مخلوق میتانه ما رب بکشه نه خود ملائکه موت بدون امر الله جل جلاله روح ما را کردن هم نمیتونه هر وقتی که امر الله ش... روح قبض میکن و وقتی که امر الله نشد ملکه یک قدم پیش منده و وقتی که امر الله جل جلوه شد پس روح ما را هم اگر قبض میکنه پس میرانده حقیقی که ما را میمیرانه الله جل جل هو الذي یحی هو یحی و یمید و الهی ترچه خب اینال وقتی که یا به یه اساس ما مسلمان هم کسی پیش یک مخلوق میره و از او دختر پسر به افعال الله را به کی نسبت داد به مخلوق نسبت دار را که ما گفتیم که زنده خالق الله هست پس امی فعل از مخلوق خواستن تو خواهر یا برادری که به شاید شمشیره میری یا تمیم انصار میری یا جابر انصار میری و مخلوق هستن تو باید فعل را که مربوط خالق است از اونها نخوایی. اگر از زیارت رفتی دختار و بچه خواستی در حقیقت فیله که مخصوص الله بود او رو بکی؟ از کی خواستی؟ از مخلوق خواستی این مخالف توحید ربوبیت تو شد و تو موحد هستی استی پرست هستی باید توبه بکنی از این کار اجتناب بکنی اگر کسی عقیده کنه که روزی و رزق مرا فلان شخص میده روزی و رزق را الله جل جل باید میده اگر کس عقیده کنه که رسک روزی مره فلانی شخص میده اگر امریکا ها با شما از گشنگی میماریم رزاقت امریکا رو ساختی بس روزی دهنده ما الله جل جل است ما گفتیم که افعال است که مخصوص الله جل جل است تدبیر زمین و آسمان است تدبیر زمین و آسمان کابل کی حفظ میکنه الله جل جل هو حفظ میکنه آیا عاشقان عارفان آیا شاهد شمشیره آیا امیر صاحب دگل خانه آیا جابر انصار تمیم انصار خود از اونا کی حفظ میکرد الله اوناره حفظ میکرد اونا مخلوق بودند دوستای الله بودن، و این دنیا را همکلشه الله جل جل, جل حفظ میکنه تدبیر زمین آسمان الله جل جل, جل میکنه کی زندگی داد به تمام مخلوقات الله جل جل, جل, جل. پس از این خاطر ما گفتیم که خلق کردن فیلست مخصوص الله جل جل رو. روزی دادن فیلست مخصوص الله جل جل. رو. شفا دادن فیلست مخصوص الله جل جل. رو. هیچ مخلوق نمیتونه که برای کس روزی بده و یا شفا بده. حتی وقتی که پیش دکتر بریم دکتر میگه من عملیات کنم لکن ما شفا دادن نمیتانم. شفا الله جل جلوهو میته پس وقتی که شفا الله جل جلوهو میته تو بر خد بده که اگر عملیات نتیجه نداد و این نفر مرد باز ما کم نگیری چرا در هر شف خانه یک مرد خانه ساختن بخاطر ازی که شفا به دست داکتر نیست او بیچاره دوام میتن لیکن شفا ده حقیقی الله جل جلوهو است پس ما الله جل جلوهو افعالش باید به خودش به یگانگی ازو شایسته هست و عظمت ازو شایسته است افعال الله را به مخلوق نسبت نتیم تدبیر کردن زمین و آسمان، تدبیر کردن شب و روز تدبیر کردن و حفظ کردن ای جهان تصرف در کائنات، مالک متصرف در شار کابل مدینی منوره را کی حفظ میکند مکیم کرامه را کی حفظ میکنه ای قاری جهان که قرار را کی حفظ میکنه الله جل جلاله مالک متصرفش کی است؟ الله جل جلاله پس تصرف در کائنات و در جهان ای هم مالک متصرف الله جل جلاله است نباید ایره به مخلوق نسبت بدیم شاید یک پلیس یک منطقه را از نگاه امنیتی حفظ بکنه لکن اگر زلزله شوه خود پولیسم در زیر سنگا گور میره اگر زلزله شوه امو این انجینیرایی که بر تعمیر ساختن خودشان در زیر تعمیر از بین میره پس مالک متصرف و حفظ کننده از این جهان کی است الله جل جلاله از این خاطر بسیاری شارهای بزرگ الله نشان میته ما که ببینین که ما یک دفعه زلزله میشه شه تک تک میشه، خانه ها چپا میشه کی میتونه که حفظ بکنه هیچ کس نمیتونه حتی همون کسا بسیاری وقتا بیدی که همون زیارت هم ببینی که زیر و زبر شدن نه قبر مانده و نه چیز مانده در سونامی شما ببینید در منطقه در اندونیزیا وقتی که زلزله شد شما برین در اندونیزیا مالیزیا و ای کشورایی که بودن در یک دشت کلان یک مسجد مانده بود دیگه چیزی که قبرستان و زیارت و خانه و قبرهای اولیاء الله و قبرهای انسانهای علمای بسیار خوب و خانه هایی تمام انسان کلش زیر زبر شده بود که یکی نمانده بود کلش از بین رفته بود مالک متصرف کی است؟ الله جل جل است هست اگر کسی عقیده کنم بوی یکی فلانی شخص میتونه که ازو زندگی ببخشن مر ببخشن مرا تو حفظ کو زندگی بر بخشن آیا حضرت محمد صلی الله علیه و برای خود زندگی ببخشن؟ نه خود حضرت محمد به چای جان داد ابراهیم و اننا که یا ابراهیم لا محزون چرا بچه‌ای پیغمبر خودش در طفولیت مرد بچه جوان داشت پس وقتی که پیغمبر نمیدونه برای زندگی و مرگ بده آیا کدام مخلوق دیگه چرا به خاطر اینکه زندگی دادن و میراندن صفات است که مخصوص الله جل جلوه است و ایره هیچ کسی دیگه کرده نمیتونه ملک الموت فقط روح قبض میکنه آیا میتونه برکس زندگی ممرد نه خیر در آخر وقتی که آخرین مرحله میشه خود الله جل جلوه ملک خود ملک الموت روحش میگیره و خودش هم از بین میبره پس در قسمت توحید افعال باید چی باید بکنیم؟ در توحید باید دو نقطه اساسی را خوب یاد داشته باشیم. دو قسم افعال است. افعال مخصوص خالق و افعال مخصوص مخلوق. افعالی که مخصوص خالق یکتا هست. این افعال باید فقط به با الله نسبت به تیم روزی دادن خلق کردن، زنده کردن، میراندن، شفا دادن، تصرف در جهان و در کائنات، در جنت و در دوزخ، تمام مالک متصرف و تدبیر جهان، تدبیر در کائنات، ای کلش صفات, س... صفات مخصوص خالق. اما صفات دیگه هست. این صفات مخصوص چی میشه؟ مخصوص مخلوق میشه. صفات عاجزی هست راست گفتن دروغ گفتن خواب کردن بیدار شدن نان خوردن آب نوشیدن پس صفات عاجزانه که مخصوص مخلوق است ایره نباید ما چی کنیم ایره به خالق نسبت بدیم پس ادب چی هست عدب در افعال الله جل در عقیده عدب است صفاتی که مخصوص خالق هست اوره مخصوص خالق بدانیم و صفاتی که مخصوص مخلوق است او را مخصوص مخلوق بدانیم هیچ صفت خالقه به مخلوق نسبت ندیم و هیچ صفت مخلوقه به خالق نسبت ندیم این قاعده اساسی هست. صفات خالق مخصوص خالق بدانیم افعال خالق مخصوص اف خالق بدانیم و افعالی که مخصوص مخلوق است او را مخصوص مخلوق بدانیم هیچ وقت افعال خالقه به مخلوق نسبت ندیم و افعال مخلوقه به خالق وقتی که اینمی فرق ما در افعال فامیدیم و اینمی را مراعات کردیم در حقیقت ادب با خالق یکتا و متعال ما در نظر گرفتیم پس عقیده توحید به افعال چی تا قاضا میگنه؟ عقیده دا باش داشته باشیم که خالق یا خلقون تمام مخلوقات الله جل جلوس بناهن اولاد از مخلوق, از، از، از مخلوق نمیخوایم؟ ایمان داشته باشیم که روزی دهنده ما کی است؟ جل پس روزی خدا بغیر از خالق از مخلوق نمیخوایم. ایمان داشته باشیم که شفا دهنده ما کی است؟ جل شافی هست پس ایرا از ایچ مخلوق ما نمیخوایم. عقیده داشته باشیم که مشکل کشاه ما و حاجت روای ما کی است؟ جل پس ما مشکل کشاه خود مخلوق نمیگیریم. الله مشکل کشاه ماست، مشکلات ما را او رفع میکنه ایمان داشته باشیم که تدبیر تمام جهان امور جهان هستی را مالک مدبر الله جلجلوست پس کسی دیگه ملک الله جلجلو تصرف کرده نمیتونه متصرف الله هست تصرف میکنه زندگی مر کلگیر هیچ مخلوق نمیتونه که دی تصرف داشته باشه و به این شکل انسان میتونه که عقیده بسیار خوب در افعال الله جلجلو داشته باشه پس ما افعالی که افعال عاجزانه هست و افعالی که مخصوص مخ... مخلوق است این افعال ما میگیم بله مرا رو خو میبرم این صفت فعل خوردن الهی از بر الله نسبت نمیدم شرک میشه بی میشه ما رو پینگی میگیره الله جل جلاله از پاک من از است لا سنت و الانم ما میخورم صفت خوردن از مخصوص یک مخلوق است به خالق نسبت نمیدم ما میخورم و بسیاری صفات دیگه که مخصوص مخلوق هست و به شان ضعیفی زیفی و آجزی مخلوق ارتباط میگنیم من بخیلی میکنم ما احیانا لا دروغ میگم ما احیانا اشتباه میکنم من پر شیمان میشم اینی افعال ضعف است که از انسان ها میشه و یهودی ها وقت لعنت الله سرشان نازل شد که بعضی افعال زشت و خرابه که مخصوص مخلوق است. این رو کردن به خالق نسبت دادن الله جلاله جلاله برمه و شما توفیق نصیب بکنه که عقیده خود درست از قرآن عظیم و شان و سنت رسول سم بگیریم و مطابق عقیده قرآنی زندگی بکنیم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته